سلام حال همه ما خوب است ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم با آن شادمانی بی سبب میگویند با این همه عمری اگر باقی بود توری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد نا این دل بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم حوالی خوابهای ما سال پر بارانی بود میدانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است اما طلاعقل حتی هر وهله گاهی هر از گاهی ببین انکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست راستی خبرت بدهم خواب دیدم خانهی خریدم بی پرده بی پنجره بی در بی دیوار هی بخند بی پرده بگویمت چیزی نمانده است من چهل ساله خواهم شد فردا را به فال نیک خواهم گرفت دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما می گذرد بعد بوی نام های کسان من می‌دهد. یادت می رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری نری را نامم باید کوتاه باشد ساده باشد بی حرفی از اپا معاینه از نوع برایت می نویسم. حال همه ما خوب است اما تو باور مکن بیا برویم روبروی باد شمال آن سوی پرچین گریه ها سرپناهی خیس از مجه های ماه را بلدم که بیراهی دریا نیست دیگر از این همه سلام زبط شده بر آداب لاجرم خستم بیا برویم آن سوی هرچه حرف و حدیث امروز است همیشه سکوتی برای آرامش و فراموشی ما باقی است میتوانیم بدون تکلم ای حتی کامل شویم میتوانیم دمی در برابر جهان به یک واژه ساده قناعت کنیم من حدث میزنم از آواز آن همه سال ماه هنوز بیت ای از غربت گریه را یاد آورم من خودم هستم بی خود این آینه را روبروی خاطره مگیر هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است تنها شبیه هفت سال خوابیدم و بام دادان هزار ساله برخواستم هی پا به پای نرفتن صبوری میکنم صبوری میکنم تا تمام کلمات عاقل شوند صبوری میکنم تا ترنم نام تو در ترانه کاملتر تر شود صبوری میکنم تا طلوع تبسم تا سهم سایه تا سراغ همسایه صبوری میکنم تا مدار مدارا مر تا مرگ خسته از دقل باب نوبت آهسته زیر لب چیزی، حرفی سخنی بگوید. مثلا وقت بسیار است و دوباره باز خواهم گشت مرا نمیشناسد مرگ یا کودک است هنوز و یا شاعران ساکت هم. حالا برو ای مرگ برادر ای بیم ساده آشنا تا تو دوباره بازایی من هم دوباره عاشق پرسجو مکن حالم خوب است همین دمدمای صبح ستاری به دیدن دریا آمده بود می گفت ملائکی مقموم ماه را به خواب دیدهاند که سراغ از مسافری گم شده می گرفت. باران می آید. و ما تا فرصتی تا فرصت سلامی دیگر خانه نشین می شدیم. کاش نام را به خط گریه می نوشتم ریرا چرا باید از پس پیراهنی سپید هی hey, بی صدا و بی سایه بمیرین هی hey, همین دل بی قرار من ریرا کاشین همه آدمی تنها با نوازش باران و تشنگی نسبتی می داشتند ریرا ریرا تنها تکرار نام توست که می گویدم دیدگانت خواهران بارانند سرانجام باورت می کنند باید این کوچ نشینان ساده بدانند که جرم باد رو بودن بافه های رویا نبوده است گریه نکن ریرا راه دور و دلمان کنار همین گریستن است دوباره اردی به هشت به دیدن از می خبر تازهی ندارم، فقط چند سباه پیشتر دوست سایه که از کوچه پایین میگذشتند، گذشتند های رنگین بسیاری با آورده بودند ساز و دهل می زدند. اما کسی مرا نمی شناخت راه من دور و دل من کنار همین گریستن است خدالا چه دیری را؟ شاید آنقدر باران و بارید که قلیلی شاعر از پی نی آمدند رفتند دنبال چراغ و آینه شمدانی اصل حلقه نقره و قرآن کریم حیرت است هست ریرا حالا هر که از روبرو بیاید بیتارف صدایش میکنیم بفرما امروز مسافر ما هم به خانه برمی کرده. قبول نیست ریرا بیا قدم هامان را تا یادگاری درخت شماره کنید هر که پیشتر از باران به رویای چشم رسید پریچه بی جفت آبها را بروسد برود تا پشت بال پروانه هی خواب خدا و سیری و ستاره قبول نیست ریرا بیا بی خبر به خواب هفت سالگی برگردیم قصه گوشه ی, ی بیکلید مرشخ هامون نوشته تقویم تمام مدارس در باد و عید یعنی همیشه همین فردا نه دوش و نه امروز تنها باریک است که می رود. می رود تا بوسه تا نقل و پولکی تا سهم گریه از بغز آه هاریآه حالا هایت را تا به هفت آب تمام خواهم شست صبح طلوع راه خواهیم افتاد میرویم اما ندورتر از نرگس رویای بیگذر باد اگر آمد شناسنامههامان برای او باران اگر آمد چشمهامان برای او تنها دعا کن کسی لای کتاب کنه را نکشاید من از حدیث دیو دوری از تو میترسم را درست است که من همیشه از نگاه نادرست و تعنی تاریک ترسیدم درست است که زیر بوته باد سر برخشت خالی نهادم درست است که طاقت تشنگی در من نیست اما با این همه گمان مور که در برودت این بادها خواهم برید از جنوب که آمدم لحجم شبیه سوال و ستاره بود من شمال و جنوب جهان را دا نمیدانستم هر که پیاله آبی میدادم گمان ساده میبردم که از اولیای باران است سرآغاز تمام ها فقط میدان توپخانه و کوچه های سرچشمه بود اصلا میترسیدم از کسی بپرسم این همه پنجره برای چیست؟ یا این همه آدمی چرا به سلام آدمی پاسخ نمی دهند؟ از جنوب که آمدم حادثه هم بوی نماز و نوزاد سر روزه میداد و آسانترین اسامی آدمیان واژگانی شبیه باران و بوسه بود زیر آن همه باران بیواهمه هیچ کبوتری خیس و خسته به خانه باز نمی آمد روز پیان خواهران پشیمان و آب و آینه بودند اما با این همه کسی از من خیس، از من خسته نپرسید که از نگاه نادرست و طعنه تاریک میترسم یا نه که از حجوم نابهنگام لکنت و گریه میترسم یا نه که اصلا هی ساده تو اهل کجایی اهل کجایی که خیره به آسمان حتی پیش پای خودت را نمیپایی باز میرفتم میرفتم میدان توپ را دور میزدم و باز میآمدم همان که زنی فال حافظ و عشوه ارزان میفروخت. دل و دست بیدی در باد دل و دست بیدی کنار فوارها میلرزید و من خودم بودم. شناسنامی کهنه و پیراهنی پر از بوی پونه و پروانه های بنا. حالا هنوز گاه به گاه سراغ گنجه که میروم میدانم تمام آن پروانه ها مرده حالا پیراهن چرک آن ها را به در می آورم می گذارم روبروی سهمی از سکوت آن ها و می گریم, می گریم می گریم چندان بلند بلند که باران بیاید و بدانم کم ام باز مهمان و موسیقی دارم حالا دیگر از ندانستن شمال و جنوب جهان بغزمم نمیگیرد. حالا دیگر از هر نگاه نادرست و طعنه تاریک نمیترسم. ترسم. حالا دیگر از حجوم ناب هنگام لکن و گریه نمیترسم، حالا دیگر برای واژگان خفت در خمیازه کتاب، گسه‌ی بسیار نمی‌خورم حالا به هر زنجیری که مینگرم بوی نسیم و ستاره می‌آید حالا به هر قفلی که مینگرم کلام کلید و اشاره می‌بارد هی hey, شاعر کی شوی خیال تو یعنی حکومت دوست باور کنید من ساده ساده به این ستاره رسیدم من از شکستن تلسم و تمرین ترانه به سادگی های حیرت دوباره رسیدم درست است. من هم دعاتان می کنم تا دیگر از هر نگاه نادرست نترسید از هر تعنی تاریک نترسید از پسین و پردخانی غروب یا از حجوم نابه هنگام لکنت و گریه نترسید دوستتان دارم ای سادگان سبور سادگان سبور. سمانم باید برای آرامش مادرم دعای گریه و گیس و بران باران را یاد آورم درم میخواست بهتر از اینی که هست سخن میگفتم وقتی که دور از همگان بخواهی خواب عزیزت را برای آینه تعبیر کنی معلوم است که سکوت علامت آرامش نیست آسوده باش، حالم خوب است فقط در حیرتم که از چه هوایی رفتن به جای دور، هی دل بیقرارم را آن پرنده میخواند. به خدا من کاری نکردم، فقط لای نامهایی بری گلبرگ تازهی کنار میبوسمت جانهاده و بسیار گریستم. چرا از این که به رویایان پرنده خاموش خبر از باغات آینه آورده سرزنشم می کنید؟ خب به فرض که در خواب این چراغ هم گریم گرفت باید بروید تمام این دامنه را تا نمی آن کجا پر از سای سار حرف عدیس کنید؟ یعنی که من فرق میان دعای گریه و گیس و بران باران را نمیفهمم؟ فهمم؟ خستم خسته ری را.